سوره کوسر در واقع تسلی است برای آن حضرت صلی الله علیه و وسلم چگونه تسلی است مشرکان گفتند چون وقتی که از بیان توحید رسول الله و از تبلیغ رسول الله ناراحت بودند و نگران بودند گفتند که بذارید چند روزی تبلیغ خودش را بکند کارش را انجام بده پسری که او ندارد نسلی که او ندارد وقتی که از این دنیا بره لذا ابتر هست ابتر میگویند کسی که منقطع باشد یعنی ادامه داشته نباشد نسلی داشته نباشد فرزندانی که نهزت او را ادامه بدهند و راه او را و خط او را ادامه بدهند ندارد غافل از اینکه که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرزندان روحانی داشت که نحضت رسول اللہ را به خوبی ادامه دادن صحابه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد از رسول اللہ در مدت سی سال سی سال مدتی نیست در اون زمان که امکانات نبود میخواستی از یک شهر به شهر دیگه میرفتی باید یک ماه طول میکشد که فقط میرفتی تا اونجا در ظرف سی سال تمام دنیا را فتح کردند تمام قدرت عرب بزانو نشوندند نه ابر قدرت ایرانی اون زمان ماند نه ابر قدرت روم ماند نه مصری ماند و نه یمنی و نه عراقی و نه اردنی و نه لیبی همه فت شدند و همچنین تا افریقا و اروپا رفتند لذا اینها ادامه دادن نهضت را و مسیر را بپیش بردن الله عزوجل می فرماید ای پیامبر ما در عوض اون به تو کوسر دادیم کوسر را زیاد تفسیر کردند ولی دو تا تفسیر که معروف تر و مشهور خدمت شما ذکر میکنم یکی کوسر به من حوض کوسر چون حوض کوسر فضائلش در احادیث احمدی رسول الله صلی الله علیه و وسلم بیان فرمودن که خدای تارا به من عطا می فرماید و امت من می آیند و اونجا اول قبل از ورود به بهش در ابتدای ورود به بهشت من و به اونها از این آب کوسر میدهم و من خودم اونجا حضور دارم لذا این حوز کوسر که اوصاف بسیار زیادی در احادیث آمده برش بعضی میگیند که مراد حوز کوسر بیشتر ذهن به بی این سمت میره راجع هم همین است اما بعضی میگن شیخ بزرگوار ما هم همین تفسیر را ترجیح میده کوسر به معنی خیر کسیر خیر کسیری که شامل دنیا خیر دنیا میشه و خیر آخرت میشه این تفسیر را اگر بکنیم فوایدش اینه که تمام تفسیرهای دیگری که شده شامل اونها هم میشه خب حوزه کسر احمد از این خیر کثیرت یکی از اون خیر کسیر حوزه کوسر است و دیگه خیری که بعضی ترجمه کردن لذا می میفرماید إنّا أعطيناك الكوثر همَنَا ما بتكوثر داديم فصلِ لربك ونحر بس در مقابل إنّمتي ك ما بتواعتها كرديم نماز بخانبراي ربّت و قرباني بده برای ربّت يعني هم ایبادتی مجانی نماز سجده برای رب باشد برای غیر رب نباشد وانحر و هم قربانی مالی عبادت مالی ببینید ما اگر سجده و رکوع میکنیم برای خدا بکنیم اگر حیوانی میکشیم هم برای رضای خدا بکشیم برای خوشنودی خدا برای غیر الله نشه که شرک میشه ان شان اک هو الابتر معنیش اینه که تو بر توحید استقامت کن بمان دشمن تو اون هست دونبریده اون از ابتر اون هست که ادامه‌ای ندارد مسیرش همینجا منقطع میشه یعنی نهزتش تمام میشه چنانچه بعد از این که مکه شد بعد از اون از کنم که فاتحه شرک خوانده شد شرک برچیده شد از اونجا جمع شد کلا از جزیره العرب شرک جمع شد دوباره شرک به اون دیار برنگشت به جاهای دیگه گوشه گوشه دنیا هست اما اونجا nist